بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والخاتم النبيين والآله وصحبه أجمعين أما بعد ششومين درس في بيت من شهروم أز أبيوت منزومة طعية رحمه الله واسكنه فسيح جناته ميقوية وإن ألقاك فهمك في مهاون فليتك ثم ليتك ما فهمت در تکمله و تکرار همون مسئله قبلیه اگر رفتی دنبال علم شرعی و کسفش کردی چه از نحوش، چه از سرفش از فقه و اصولش و تفسیرش و حفظ قرآنش سپس کج رفتی منحرف شدی و این القاک فهمو که فی مهاوین در حاویتو را انداخت فا اموهاویه بدون که تو آقابت کج فهمید کج روید آقابتت اینه که به جهنم انداخته میشی با سر از دو مسأله بار حزار باش در طلب علم يك رياه ودو استقلال در فهم بيكي من انشنين فهمي ده من انتورين مفهم تو كي الله جل وعلا در قرآن ميقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ومن يشاقق الرسول مشاققه نی مخالفت با رسول الله صلی الله علیه و سلم. مثل ذل رسول الله سان یه چیزی میگه یه چیز دیگه میگه رسول الله صلی الله علیه و میگه که الله بوله آسمون میگه نه بوله آسمون نیست میگه در تکبیرات احرام منتکبیرات انتقاد دست بالا ببد مسخره میکنه میگه این چیه داره باد میزنه کسی مخالفت بکنه بر حذر باش کسی مخالفت بکنه با رسول الله صلی الله علیه و آله و من یوشاقق الرسول من بعد ما تبین له و بعد از اینکه تبیین شد فهمید که حدیث صحیح سندش درسته ويتبع غير سبيل المؤمنين راهي راه غير از راهي كه صحابه گرفتن خصوصا سبيل المؤمنين المؤمنين ما عرفاش خطاب الله جل وعلا مشيخسه مقصودش مرادش چيه زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم اين نازل شد كسي غير از صحابه نبود هر كسي ميخاد مسلمان بشه بدونيد فهمش غير از فهم ابو بكر وعمر و عثمان بخاد باشه و ديگر اصحاب ياران چيه نوله ما تاولى مسيره جهنم نولي ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير اي مسيره اما مسيرك اجي نغا من فهميدن مني توري مفهمم برو نغا كون شي فهميدن برو نغا كون شي فهميدن بعقل خودت هم چون فرزند نوح نوح به الله جل وعلا متكيود و فرزند نوح به نوح الله بهش فهم لا عاصمه اليوم امروز ديگر روز نجات نیست کسی نمیتونه نجات پیدا بکنه امروز همه باد غرق شدن الان کسانی که سوار کشتیان این چیه وحیه عقل چی میگه عقل فرزند نو ساؤی الی جبل یعصمونی لا عصم یعصمونی نجات نیست نجات هست کجا نجات کوه میرم بالا آب که بالا کوه نمیرسه میرسه نمیرسه شما دیدید آب بالا کوه میرسه عقل میگه نمیرسه. میرسه شما دیدید آب دری بیات بالا سر کوه میرسه نمیرسه. عقل میگه نمیرسه. فرزند ارزند پیغمبره ولی متکی به چی عقل خودش نه وحی. نوح متکی به چی وحی چی میگه آب میرسه رسید نرسید؟ رسید غرق شد نشد این یک آفتیه دردیه بر باش متکی به خودت نشو بفهم فهم خودت درک خودت نگو من اینطوری میفهمم ببین علما چی فهمیدن اهل علم چطور برداشت کردن اول صحت اسناد رو نگاه کن بعد صحت استدلال ببین اول دلیلش صحیحه دوم ببین نوع استدلال و برداشتش رو صحیحه یا غلطه آفت دوم ریاس آفت دوم ریاس بشینی اینجا که بگن فلانی طالب علمه فلانی این کتابو حفظ کرده قرآن حافظ شده و الی آخر بر حذر باش این حدیث همیشه مد نظرت باشه اولین کسانی که به جهنم انداخته خواهند شده از امت کیان اولیشون حافظ قرآن اون صاحب مال و اون کسی که به جهاد رفته ابوهریره رضی الله عنه زمانی که اومد این حدیث را به شفاهی بگه غش میکنه یک بار دو بار سه بار هی میخواد بگه از هیبت حدیث رسول الله صلی از هیبت سخنان رسول الله صلی و غش میکنه بعد میگه که بله الله جل و علا این شخص را میاره حافظ قرآن رو میاره اون صاحب قرآن رو الله میاره قرآن خوندی بله خندم حفظ کرده برای تهجد بخونم الله جل میگه کذبت دروغ میگی تقول له ملائکه الله كذبت فرشتگان الله میگن دروغ میگی سپس با سرب جهنم انداخته میشه صاحب مال میگه انفاق کردم برای الله جل و علا الله میگه خیر تو انفاق کردی که بگن فلانی سخاوتمنده دست و دلوازه اجرت و پاداشتو گرفتی و گفتن بهت ثومیم اون کسی که جهاد داشته بود میگه جهاد کردم برای علای كلمه توحيد الله میگه خیر دروغ میگی فرشتگان میگن دروغ میگی تو جهاد کردی که بگن فلانی شجاعه شیردل نیت خودت را معالجه کن درمان کن در طلب علم برای چی نیانجیستی نگو من اومدم اینجا علم بیاموزم که دعوتگر بشم مثل شیخ فلونی علم بیاموز برای خودت اول ميجم ميجم ميجم علم بیاموز بعضی که ما مالک میگه میگه ما طلب علم کردیم برای خودمون که الله را با بصیرت بپرسی كل هذه سبيل ادو الى الله على بصیره یعنی که در دینمون با بصیرت باشیم همه اول چی باشه اینکه ما بیاموزیم برای نجات خودمون بعد تلاش بکنیم برای نجات دیگران نه اینکه خودتو رو نادیده بگیری بگی نه من میخونم برای اینکه دیگران رو دعوت بدم اول خودت او انفسکم اول و اهلیکم که ثم که ما فهمتا فهمی که کج باشه ای کاش که اون فهمه نبود اون کاش که نمیرفتی نمیاومختی سپس ای کاش نمیاومختی و نمیفهمیدی بعضی از علوم آفتن دردن همونطور که ریا آفت درد نیاز به درمان داره با اخلاص کجروی کچف کج هم نیاز به درمان داره نیاز به درمان داره علاج داره این درده من یک بسال دادم یک گوشه یه از زلخوه سره تکرار کردم چند بار گفتم به با آفت کچف همیشو فهمیدی دیگه گفتیم یک مورچه از این سگ نجس بهتر بود مورچه قوم خودش را به کشتن نداد حفظ جان اون ایلو تبارش از مورچه های مثل خودش مهم بود ولی اون شخص خارجی اصلا به فکر نفوس مردم و جان و تن مردم نیست مال مردم نیست رسول الله صلی به کعبه نگاه میکنه میگه خون یک مومن است تو عزیز سر الله شرف یک مؤمن خونش ولی یک شخصی عالم نما میتونه راحت مردم را با کشتن بده با خونشون بازی بکنه تحریکشون بکنه و حرظ المؤمنین علی القتال با دست خالی صحب بشه که خون بیگناهانی ریخته بشه و کشته بشه این یک طرفش طرف انحراف کجی از جمله انحرافات آفت ها و دردها و رنج ها و مرض از مرض های قلب مثل این زلو که بریز بود دوچار خودشیفتگی و غرور شده بود آفت شیفته شدن به علوم غربه خودباختگی اینجا درد چی داشتیم خودشیفتگی اینجا درد داریم باختگی. درد خودباختی. اگر دخترمون همسرمون نقاب پوشید، پدرش تندروه. پدرش سلفیه. به خاطری که نگم بهش سلفی نقاب نپوشه. خیلی جاه است ما دو تا میشیم در دینمون. جهاد برای دفاع بود، کی گفته اصلا ما جنگیدیم نه با رومش نه با فرسش کی گفته اصلا چمشیر نکشیدیم مگر در مقابل دشمنی که به جنگ ما اومدن. نه این خودباختیه. با افتخار بکنید ولی جنگیدن مسلمان‌ها برای علی کلمه توحید. برای برپایی دین الله، شرع الله، برای عزت دین اسلام جنگیدم بله تو چرا پس میکشی؟ وقتی که تو جوچار خودباختگی شدی فریفته غرب میشی حب اونها در دل تو میاد و اشروفی قلوب همون عجر نشست و برخواست با آنها حرف اونها رو شنیدن مسافرت به سرزمین اونها از کفر و شرق دید و بازدید کردن نشست و کردند. کردن اون غیرتت به دینت ضعیف میشه اون دنیایی که اونها دارن در دل چشمتو عزیز میشه تو خود باخته شدی دیگه تو خودتو کم شمردی دین و ایمانت التزامت پایبندیت به دین کم شمردی اونها را بزرگ شمردی همون آلودگی فکری که در جانب اول خود شیفتگی بود همون آلودگی همینجا هم هست من مثال میزنم تو زمان هارون رشید بلایی امه اسلام بهش دچار شدن چی بود ترجمه شدن و ترجمه کردنه فلسفه یونان مسلمان ها زمانی که اومدن اون کتاب رو خوندن از سخنان عرسو و سخرات و بقراط، و عرسکتیویس و فلان و مثل الان که دانشجی های ما فکر میکنن نیچه کسی بوده و شپنهاوه رو خودباختگیه آقابت خودباختگی چیه؟ آلوده شدن به آلودگی آنها به مرض آنها چه مرضی داشتن؟ خدا نشناس بودن اونا باور نبودن خدا رو نمیشناختن از اصل فلسفه اساسش ضد زد دین بودن شپه رو برید کتاباش رو بخونید نیچه رو برید بخونید اساس فلسفه منطقه شک در الله انکار وجود الله اساسش این فلسفه معلم اولشون رستو بوده معلم دومشون در اصلا فارابی بوده و بعد ابن سینام شخص خودباخته اینها را الگو می‌بینه اینها رو بزرگ می‌بینه و مشمره چیکار می‌کنه میره کتابای اونها رو میخونه سخنان اونها رو در پرانتزی بزرگ می‌بینه آیات الله را نمی‌بینه سخن اونها رو می‌بینه آیات الله برش رد میشه عبور میکنه لیسا ک شی و هو السمیع البصیر چطور بتونم این آیه رو درک بکنم لیسا ک میثلی شی خدا, خدا نباید مثل انسان باشه خدا کسی ندیده و هو السمیع البصیر ارسو گفته نبات خدا جس باشه نبات خدا جر باشه نه خدا حج داشته باشه نبات خدا ای ال از صفات جسمی داشته باشه در نتیجه هر چیزی که صفات ثبوتی داشته باشه نبات الله داشته باشه پس چه صفاتی الله داره صفات ادمی نمیشنوه نمیبینه نه حرف میزنه هیچ پس قرآن چیه که سخن الله میگه نه قرآن سخن نیست سخن الله نیست. الله که حرف نمیزنه اگر حرف بزنه زبون داره اگر زبون داشته باشه میشه جسم مثل انسان الله گفته لیسه کم مثل ایشه آخر عاقبت آلو چیه؟ به فکر عرسو خدا نمیشنوه نمیبینه حالا خدایی که نمیشنوه نمیبینه من چگونه ازش هیبت داشته باشم بترسم فردا روز قیامتم خدا که ندیده که من رو بیاد محاسبه بکنه خدا که نشنیده حرفم که بیاد مرا اونجا محاسبه بکنه الله بالا عرش نیست الله نمیبیند الله نمیشنود سبب شد که خیلی ها از متکلمین بر برگردن دیگه ابول حسن عشری که نمیتونم تصور بکنم خدا نشتوه نمیبینه اراده نداشته باشه علم نداشته باشه نمیتونم تصور بکنم میگه حسن خب این میشه عدم پوچ این فهم نادرست که در ازای چی اومد خود باختگی. فهم الصحابره ناديده غرف فهم التابعيين ناديده غرف فهم مالك وامثالش ناديده غرف مالك زماني كي اومد اون شخص مبتدع و گمراه قف كي الرحمن العرش السوا كيف السوا الله ولا العرش مسوي شده باله عرفه شطور باله رفته قال للسوا معلوم السوا معلوم السواين علو و ارتفاع الله باله عرففته رفته سرچش والكيف مجول والايمان به واجب السواكه معلومه كيفيتش مجول ما نميدين والله كنيدين شطور بيكم الله شطور باله عرفه رفته مصیبر حرف شده چطور بگیم میتونیم میگه بگی قضاوت بر الله بکنیم بگیم مثل پرنده بال گرفت یا بگیم پرله گذاشت میگه میشه قیاس بر خودمون بگیم کفره ليس کمتلی شی فلا تضربوا لله الامثال الله میگه مثال نزنید برای ما بس این فهم کچه بر باش ازش عاقبت فهم کچیه چیه هیبت النصوص از دلت میره شخص حاضر پای کتاب سید قطب و ارسو و, و از اینو منحرفین بخونه گمراهان بخونه شخص میاد میگه که چرا سید قدرت قطعی کردی با اینا بعضی ها به طبش رو بر برمی‌خوره فکر خوارجو داشت تکفیری بود کنه کتاباشو نخونید تا نگم تو الان میبینم فلان جا مجلس جمع شدن همین کتابا رو میخونن یا ادل اجتماعی رو میخونن یا معالم فطریق را میخونن یا فیزلار را میخونن تفاسیر راستین اهل سنت را رها کردن از ابن کسی رو غیر گرفته مرجع و مصدرشون فهم سقیم و یک ادیب قرار دادن یک ادیب بوده عالم نبود ادیب بود شغلش ادبیات عرب بود عالم نبود از اون موی ریش روی صورتش مشخصه عالم نبود کسی که علم شرعی نخونده میاد تفسیر قرآن را می نویسه چیکار میکنه با قرآن الله جل و علا جز تحریف حاقبت تحریف هم چیه؟ یا این که الله را در دل کم میکنه و عظمتش الله بالعرش نیست مزرگ نیست الله نمیشته به و نمیبینه الله بس چیه هیچ و یا این که حیب خ دیگه مسلمان ها چیکار کرده؟ کاری نکردن فقط سر همدیگه رو می مسلمان ها فقط کشتن بلدن مسلمان ها آخر یا از این زاویه نگاه میکنه یا از اون زاویه دیگر مسلمان ها کافر شدن مسلمان ها فقط اسلامشون ظاهریه کسی از دین دینی ایمان نداره برید میکنین این معالفه اسم می اسمشو میارم چون هنوز پرچمش بالاست هنوز بعضی ها این فکر را کم گرفتن نه نمونه هست من دارم میگم به این که باطل را کم نشمرید وظیفه ما هست که باطل را انکار بکنیم و تحذیر و هشدار ازش بدیم چی برامون میمونه وقتی که بیایم علم بکنیم حرف متکلمین و فلاسفه و بیایم درباره الله جل و علا به ظلم قضاوت بکنیم و من اظلم ممن افتر على الله کذبا ظلم و این است که انسان بر الله قضاوت میکنه نمیبینه نمیشنوه پس چی مون برای الله جل و علا اینکه وقت هوشیار باشی دین تو ارزشش به الله داشتنته اون اللهی که عزیمه بزرگه و مؤمن در دل خودش الله اللهش را بزرگ بشماره الله را بزرگ شمارده شرحت را بزرگ بشماره دین الله را بزرگ بشماره دین و شریعت الهی که عزیزه خیلی اصلا عزت شریعت الهی را لمسش نمیکنن چرا لمسش نمیکنن چون گفتم فقط الله اكبر بلدن والسلام عليكم از نماز فقط همین رکوع سجود یاد گرفتم چیز دیگه از علوم شرعی یاد نگرفتم نه از تفسیرش نه از سنتش عبرت نگرفتن از نصوص شریعت نفهمیدن وقتی که الله میگه بصیر یعنی چی یعنی تو رو داره میبینه مراقبته رب ربک لبالمرصاد میدونه در کمینته الله جل و علا مؤمن هبت ترس الله جل و علا مؤمن میترسه حرام مرتکب نمیشه ولی که جاهل و نادان چی مؤمن قدر شریعت و دینش میدونه ارزش اون اسلامش دینش میدونه اسلام اومده بهش عزت بده میدونه الله جل وعلا عزتش رو خواسته الله جل وعلا در قرآن میگه و من آیاته خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا إليها وجعل جعل بینكم مودة و رحمة و من آیاته از آیات نشانه بر وحدانیت الله چیه؟ انخلق لكم من انفسكم ازواجا از نفس خودتون ازواج برای تو زوج قرار داد ازواج قرار داد بیان ما بین ما و همسران که بچه هامون حلال زاده باشن حرام زاده نباشن زمانی که بچه حرام زاده شد چی میشه تو میتونی بهش بگی این دزدیه این ظلمه این تجاوزه این سرقته این غیبته این فلانه میتونی بهش بگی چی بهش میخوای بگی اون پدر بی وجدان اون مادر بی وجدانی که اینو ساختن انداختنش بیرون و بزرگش نکردن قراره که از اون بی وجدان این بچه با وجدان بشه حلال و حرامش میدونه مجبورم این رو بزنم چرا چون ما مسلمان ها قدر اون شریعت الهی اون دین الله اون ازدواجه رو نمیدونی لمسش نمی کنیم لمسش میکنی وقتی که اون کسی که محروم ازش را ببینی جلوه چش خودتو تصور بکنی این بچه حرام زاده جلوه چش خودت بیار دل نداره بگه بابا لباس میخوام دل نداره بگه بابا مداد میخوام دفتر میخوام اون مرد بی غیرت بی وجدانی که این رو ساخت و گذاشت به آقابت این کس و کار به فکر یادش نبود که آقا این چی میشه آقابت چیه باد کجا بره کجا بخوره کجا بخوابه چی ببوشه دینه بچه منو تو عزت داد لباس داد دینه سرش بلنده میگه پدرم فلانیه تو هم سرت بلند اینجا نشستی پدر داری اگر سرت بلند اینجا نشستی سر پایی نه انداختی عزت داری اون عزت اسلام به تو داد الله به تو داد عرضشی که تو داری از دین الله داری علم نباشه مردم با جهل زنا میکنن جهل سبب زنا شده جهل سبب فحشان میشه جهل سبب بیبندباری میشه سبب حرام زادگی میشه عاقبت خوبیه شر محس شر محس هیچ خیری توش نیست برای ما البته چون سرفکندگیه چون زلته چون خاریه چون بیکس کاریه از این پسرو اگر کسی بود دخترش یا پسرش فرقی نمی کنه پسر ی فردا بیاد خواستگاری دخترتون بهش میدید حرام زاده پدرت کجاست مادرت کجاست دینه ارزش دینه ارزش علم علم به انسان شرافت علم به انسان تقوا میده علم به انسان شناخت حلال و حرام میده علم به انسان عزت مندی در سر بلادی میده علم همش خیره ولی جهل چه ستجنی من ثمار العجز جهلا وتصغر في العيون اذا كبرت ستجنی من ثمار العجزی جهلن ای طالبه عاجز و درمونده نشو چون اگر درمونده و عاجز شدی از اون درخت سمرهی که میکنی چیه جهل میوت میشه جهل اون میوهی که آدم رو خارج کرد از بشته الله جل و علم. اگر آخر عاقبت خودش رو میدونست که چی میشه بر سرش میاد آدم علیه صحیح و, و, و میخورد می نمیخورد از آخر عاقبت خودش قافل بود جاهل بود فوسوس لهم الشی الله جل و علا میتونست حصار بکنه دور اون درخت که آدم ازش نخوره میتونه سرباز از فرشتگان بذاره الله جل و علا میخواد آدم و فرزندانش قدر علم را بدونن میخواد الله جل و علا بندگان قدر علم را بدونن ملوك الزباني که قفتن الله جل و علاوه قال ربك للملائكة اني جعل في الارض خليفة قال و فيها من يفسد فيها و الدماء قال اني على ما لا تعلم قفتن چرا آدم رب بيا فريني که بخاط فساد الله قفت ما میدونم شما نمیدونين و علم آدم الاسماء كلها علم الله آدم رب نه فريني که ندونه نعم میخواست بدونه و میخواست با دانشش برتر بشه از فرشتگان اگر خلقتش کنه میگه وجه برتری آدم اینجا نشونه ملائکه میده میگه و علمه ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکه ملائکه اعتراض شد والله گفت تختون مر داری اطاعتت میکنی عبادتت میکنی هو چه نیازی به آدمه الله گفت که چی من چیزی میدونم که شما نمیدونید آدم از شما بهتره جوز وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبؤوني بأسماء ولا إن كنت صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم الله من قد عزمتش تقول إن خلقك وفردرا نمو يشبه علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قال سبحانك لا علم لا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الله من خلال علم الشرنمائش بده آدم دونس آدم حقيقة علوم پي بورد الله رأى شنانك بعد مشناخت شناخت حقيقة علومه الله ياد اشتاد علم آدم الأسماء علم آدم الله ياد اشتاد أو موزش اشتاد أو مختش بأين سبب شد كيه بدونن وجه تمایز وجه برتری آدم بر خودش همونطور که رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماین اگر شما ای بندگان گناونه میکردید الله شما را از بین میبرد کسانی میورد که گناه بکنن که پی ببرن به الله رحمن رحیم از انسان گناه سر میزنه اون گناه وسیله ای برای این که انسان پی بر رحمت الهی و مغفرت الهی ببره اگر الله نمیخواست ما گناه بکنیم و اسباب و وسایل ابزار گناه را در اختیار ما قرار نمیداد الله نمیخواد از ما که گناه از ما سر بزنیم میخواد حقیقت ارزش خود الله و دین و شریعت و سخنانش ما بهش پی ببرین من مسال ازدواج و فحشا بهتون زدم برای چیز زدم براتون برای ارزش و قدر اللهتون و دینتون و خودتون رو بدونید الان فهمیدید چقدر با ارزشید با این مقایسه کردن الله داره مقایسه میکنه بین علم و جهل ملایکه رسبت به این چیز جاهل بودن خاطر همین کسی را که نسبت به این چیز جاهل لباشن ونتی که الله مد نظرش از خلق آفریده حکمت بسیاری داره یک از حکمت‌ها را اینجا الله داره بازگو میکنه که چرا آدم را آفریده فتلقا ادم ربکلمات فتاب علی هو التواب الرحیم آدم توبه میکنه الله هم توباشو میپذیره ملائکه میدونن سن معنی توبه چیه گناه نمیگردن ولی اینجا وقتی که تکلیف شد آدم مکلف شد گناه کرد فهمیدن که توبه چیه و الله هم جل والا اینو ما علم بهش داشته علم به علم به ستاجنی من ثمار العجز جهلا بدون با تمبلی، با سوسی، با کسالات میوی که برداشت میکنی جهله و تصغر فی العیون ایذا کبرت و تصغر کوچک میشی نزد مردم اگر بزرگ بشی کسی تهیه لباس خانه سالمندان کی ساختن مسلمان ها؟ این فرهنگ غربی در جامعه ما از کجا آمده؟ از غرب واجد فرهنگ غربی از غار آمده خوادرس سر میدم چرا نیاز دارن به خانه سالمندان؟ چون بره والده ندارن، چون شرع و دین ندارن، چون ترس از الله ندارن، چون وقت الله و ما جناح الظل ندارن، بالات و فرش کن، زیر پای پدر مادر ندارن، چون جاهله، ولی کسی که عل داشته باشه دسته و شریعت الله جل و علا پدر مادرش رو کجا بیزاره؟ روی سرش، افتخار بیکنه پدر مادرش زدن. افتخار به پدر مادرش، زنده، این سبب وجود منه، سبب عزت منه، سبب شده من حلال زاده بشم این پدر, مادر. این پدر سبب شده من حلال اگر این پدره نبود من حرامزاده زاده می شدم من نداره پدرت رو سر تو یا نه خیلی مننت بزرگیه. تصورش کنه اگر اون پدره نبود تو حرامزاده بودی تصورش رو گفت پای پدرت رو بست من نداره ب تو که تو این چینیت با ازذت سر بلند اینجا نام و نسبی و اصلی برای خودت داری. ولی نه انسان کوچک میکنهجهل انسان کوچک میکنه پست میکنه ذلی میکنه خار میکنه و تصغرفلیون در کبر خصوص ه که بزرگ باشه س ازش داره و بال گردن جامعه میشه. کسی تحویلش نمیگیره کسی که جاهل بوده خانواده هم جاهل اند. دنبال علم نم بوده دیگه دنبال حلالش نبوده بوده توقو نداریم کسی تحویلش میگیره مثل اون جوانی که زواج نمی کنه سن ازش میره زواج نمی کنه با عاقبت خودش اندیشیده میخواد چه کار بکنه رو تحویل میگیره اگر شکسته شد اگر پاش شکست اگر زب... اگر افتاده شد مغرور نباش متکبر نباش ناز به ماله ناز به قدرت توان تلان عاجز میشی الله جل وعلا اگر را از ضعف قوی ساخته بعد از اون قوت دوباره ضعف ما نیاز به فرزند داریم زکریا است الله را صدا میزنه ضعف خودش رو به درگاه الهی ابراز میکنه رب لا تذرنی فردا بدون که تو محتاج این شرع الهی است این ازدواج الله اگر شر کرده برای خودت تو دست بکشی اون اهل باطل میان تکسیر پیدا میکنن زیاد میشن حرامزاده ها زیاد میشن جامعه ای که حرامزاده هم توش زیاد بشه دیگه امن نیت نیست چون دیگه حلال حرام که حالیشون نمیشه قات گشتار همه چی خود داشته باش کسی نیست دستشون بگیره با اینجا این کار انجام ندهی کسی نیست شکایتش رو به دوش بکشه در خونه کی میخواد بزنی با بچت نگاش دار میخوای کی بیگی دین از هر جانه اگر تو بهش نگاه بکنی ها عزت درش سربلندی بلندی درش سرافرازی درش تو محتاج خاطر محتاج علمدن تو شرف میده تو بیاموزی بعد دست بکشی دنبال حلالت نباشی باطل جای اون حلال رو میگیره باطل جای اون حلال رو میگیره رو میاری به فیلم به نگاه مبتزل کردن نگاه این کردن حلال تو داری روزن میگیره یک دو سه تا چهار تا بگیر و تفقدو ان جهلت وانت باق وتوجد ان علمت ولو فقدته و تفقدو ان جهلت زمانی که تو جاهل بشی میدونید از بدی جهل چیه زنده یاد عزت نمیشه کسی سراغت نمیگیره جاهل کسی سراغ ازش اگر پدر دو تا پسر داشته باشه من تو خانواده ها دیدم یکی ناخلف یکی بار به والدینش اون پدر مادر انگار که اون ناخلف وجود نداره اون فرزند بد وجود نداره عاق وجود نداره اگر میخوام برم پلانی کجاست فلانی چرا نیمت چرا سر نزد چرا دیر کرد چرا زن نزد عدم وجودش حس میشه خوصا اونای که الان از دور اومدن اینجا دور روز بشتر نیست اومدن برای دو روز سفر. میبینن مادر از این ورزنگ میزنه پدر از این ورزنگ میزنه همه جوی حالش کجا رفتی کجا نیستی چرا نیومدی ولی حالا تبدیل بشی به یک شخص جاهل عاق بی ارزش بشی معتاد مشروب خار والله سرغه تبه بره یعنی برکه نگرده والله من با گوش خودم شنیدم یعنی پدر اومده مسجد به هم میگه دعا کن بچه‌ام بمیره سقط شه برده یه روز با ماشین من لگ زده یه روز میدونم فلان کرده هر روز مسته میگه والله اون چیزی که از این دنیا آرزو دارم مرگ پسرمه اگر میتونستم با دست خودم سرشو میزدم پدر داره به من میگه حالا اگر اون پسر خوب بود اهل نماز و طاعت بود با به والدینش بود جلوی شو بلند میشد احترامشو میکرد اون پدر این اینجوری نمیگفت هرگز والله و تو جد و ان ولو فقدت علم اگر تو هم بمیری نباشی اسم تو نامت هست شما اینجا اسم البانی را رحم الله چند بار شنیدی حديث بخايب ياري زيف سه ألواني محتاجش جهلة الشباب شكلني يسمدوا إن عالم بشي وإن عالم بتجاهلي سنداس حنوس بيان ما نامش ميات رحمه الله واسكنه في سياح الجنة خده البيري رحمه الله واسكنه في سياح الجنة سنداس أبو إسحاق البيري كجواب تدارس بره كي مورده 1000 صلاة قبض اسمش نامش سنداس علم ترا زندميكونه مثالش علم ترا زندميكونه وتذكر تذكر قولتي لك بعد حين إذا حقا بها يوما عملت وتذكر تذكر قولتي نصيحتي كتيرا بيت ميكونا ميكونا يه بيادت إذا حقا بها يوما عملت اگه يك روز هم شده عمل بكونا در بعض الزسقه هامده و تغبطها إذا عنها شغلت غبته ميقوري بأون روزي ديه وقت براي علم نداشته وشي مشغول بشي به دنیا اون علم فاصله بگري اون موقع ترين علم رو مثلا من خودم میگم نه تو مدینه که بودیم خب جلسات شیخ عبدالمحسن عباد شیخمون که می نشستیم خب الان لمس میشه مثلا وقتی که میریم حاج و عمره خود به خود عشق از چشمامون جاری میشه من خودم یک مثالی دارم میزنم شیخ عبدالمحسن از دور ببینم مننت داره بر سر من اون جلسه جلسه ایمان بود علم بود طالب علمی که لمس کرده جلسات هل وقتی که محروم میشه قدرشو میدونه اینجا شما نشاستید میشنوید حالا از این جلسه ما محروم بشید از این این از ما گرفته بشه سنحس ميكون، اللمس ميكون، دنیا بارش سخ ميشه، مثل تعبن المالك، وحلال ابن مياب رابن ربي، واقت عليهم الارض بمرحبت، چرا دوچار اون دبيق شدن، تنگ نوئي شدن، دل تنگي شدن، شو محروب شدن السخن برسول الله صلى الله عليه وسلم، طالب علمم كأس حلقي علم و حديث محروب بشه، انگار كأس رسول الله صلى الله عليه وسلم محروب شده، طالب علم، بعد انشين يموش ديگه، اگر ان دار خود اللمس نكارده برو ايمانتو کابر ملک اشبری خشب هاو به قیام و تهجد که رسول الله صلی الله علیه و آله دیگه حرفش نمیشنه اگر از علم شرعی محروم شدی اشبریس تو لذت خوشی دنیا رو از دست دادی خوشی دنیای ما طلاب علم بواد هم نشینی و هم با رسول الله صلی الله علیه وسلم آله باشه نشسته بر خاصمون حرف و سخنمون بعد احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم آله باشه انجار که بواستریم زندگی میکنی علم انسان عمل بکنه قدرشو میدونه هموتو که الان گفتن من مثال زدم در بحث زبای الان قدرت خودت رو قدرت سی قدر پدر و مادرت دونی سی که حلال زادین علم من تو سر حلقه نشستی نمولی تهجد خوندی قرآن الله را تلاوت کردی با اون حفظت اون جهاز کل ذات بی بری اون مزه علم را که چشیدی اونجا احساس می‌کنی و ان اهملتها وانا وملت إلى حطام قد جمعته لا سوف تعظ من ندم عليها وما تغني الندامة إن ندمت وين أهملتها إهمال كأدي تلاعب إهمال تركاردن بالكاردن بالشكاردي ونبث نصح النصيحة تام كتركادم أو إذا قشت نكادي راهش كادي وملت إلى حطام وملت ميل كادي بسويه إن دنيا ناقيز حطام دنيا وإن دنيائك حس به زريره دنیای ناچیز و ملتا اله حطام قد جمعتها مالي جام كردي از اين دنيا با خودت مگه ميبري با خودت اموال و ثروت را بعد از مرگت با خودت ميبري با خودت لسوف تعذر مردي ديگه جاي براي پيشيمانيت نيست اونجا هست كه ميخاي دست تو گاز ميگیری لسوف تعذ من ندم عليها دست تو گاز ميگیری از پيشيماني از افسوس و حسرت وما تغني الندامه ان ندمت ديگه الان چه پشیمونی چه به دردت میخوره بخوای پشیمان بشی تو جوانی قدرشو ندونستی نمیدی پای حلقات علم ننشستی پای احادیس رسول الله صلی الله عليه وسلم سلم ننشستی پای بحر الله ننشستی کی میغاهی تعمل لذت علم رو بچشی اگر در جوانی قدرشو ندونستی اذا ابصرت صحبك في سماء قد ارتفع عليك وقد صفلت إذا أبصرته صحبة ما يدري الصوت دي, دي هناك طالب علم انا تش دربوني اتش در اخرت انا بيشترت بحث اخرت بش في سماء يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات بي رفاقات رفقات على الدرجات سبات كبيره ده روز قيامهه همشيين درين دنيا رفعتشون واخايديد تقدر تفعل عليكم وانا اصولك قد غرفتن ولكن تو مندي وقد سفلت باس مندي عقب مندي خار شدی، زلیل شدی و اون عزیز شده هنجا پیش ایمان میشی بدون فراجعها و دعن که الهوینی فراجعها و دعن که الهوینی نفس قطره مراجعه کن بل بکن اون سستی و تنبالی کسالات بل کن اون حوانه اون سستی و تنبالی و خستی بل کن دست بکش از این افسردی خود خود افسرده کردی خسته کردی فما بالبطئی تو دریکو ما طلبتا بدون که در اون آهستگی و یواش شرفتن اون چیزی که تو میخوای از علوم شرعی نمیتونی با اون کسب بکنی فما بالبطئی تو درک با یواش رفتن آهسته رفتن با اون جای والا و مقام والا نمیتونی دست بیابی. علم شرعی زحمت میخواد تلاش میخواد همت میخواد زور و بازو میخواد قوی باش سوس و نباش این سیومین بیت از عبیاته تو ای این عالم بزرگواری که مننت بگردن من و شما داره با این نصح و نصیحتش این نصیحت ها گران قدرش رو باید بدونین سبحانك الله وبحمده سبحان الله والحمد لله وصلى الله على محمد و ال محمد